سران ابو جهل اطبا و اطیبا کدامی که در فاطمه مکه مسلمان شد اکرمه بن ابی جهل مسلمان شد اکرمه پسر ابو جهل بود ازمون افرادی بود که خونش مباح بود نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم در حنگام فاتح مکی مکرمه قیلان فرمودند که من دخل دار عوی صوفیان فهو آمینون هر کسی داخل خونه ابو صوفیان وارد بشه در امان هست بعد هر کسی در بیت الله هم وارد بشه در امان هست هر کسی خونه خودشو هم ببنده داخل خونی هم بشینه او هم در امان هست در این امان و چیزی که نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم برای اهل مکه اعلان فرمودند چند نفر از اونها ما با خودم قرار گرفتن یعنی مستصنا بودند. یکی از اونها هنده همسر ابو سفیان بود؟ یکی از اونها عکرمه پسر ابوجهل بود یکی از اونها فرتانا کنیزکی بود یکی هم ابن بن سرح بود یکی هم عبدالله ابن ختل بود حالا از اینها بعضی مسلمان شدند مانند هنده مسلمان شد عبدالله ابن ابیسرح مسلمان شد عکرمه مسلمان شد هنده مسلمان شد با اینها کاری نداشت اینهاک مسلمان شدن اسلامونها رو پذیرفتن عبدالله ابن ختل آمد خودش روی پرده بیت الله آویزان کرد فرمودن که همونجا او را بکشید شیطانی بود اول مسلمان شد بعد که به عنوان عامل یعنی مسئول جمعآوری صدقات و زکات بود رفته بود و غلامی داشت غلام شو غزاد غذا درست کن اموال از مردم جمع کرد و که مدینه برساند غلام هم مسئول غذا بود غلام خواب رفت از خواب بیدار شد خود عبدالله ابن خطل دید که غلام غذا درست نکرده غلام کشت وقتی غلام کشته شد حالا دید که مدینه جایی ندارم مرتد شد اموالو گرفت فرار کرد رو مک... مکه مکرمه از اون جان دیگه همیشه کارش بود توهین کردن توهین کرد و شعر توهینی بر علیه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بخاطرین هم قتل کرده بود هم مرتد بود مستحق قتل بود و در مکه کشته شد اکرما هم جز هم پسر ابو جل جز همین گروه بود بعد کشته می شد. اما اکرمه وقتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم داخل مکه اومدن اکرمه مکه رو ترک کرد رفت بیرون از مکه به طرف ساحل رفت سوار کشتی شد و رفت سفر دریا به طرف یمن جاهای دیگر خواست بره طوفان در مسیر راه کشتی رو تهدیدی کرده دست به دعا شدند می گفتن لات و کمک کنید ما رو همین چیزو گفت لات کجای عزا کجای کمک کنید همون کشتیبان گفته اک اینجا لات و درد نمیخوره فقط الله اینجا فقط الله اکرم با خودش گفت پس اون خدایی اون لات در دریا در دردونه درد نمیخوره در خشکی هم مشکل بشه من نیست پس اون خدایی که اینجا هست هر جا اون خدا هست از همونجا دیگه در دلش اون نور ایمان افتاد اما همسرش ام حکیم رفتن پیش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم برای اکرمت طلب امان کرده وقتی که تعمین اکرمه رو گرفتن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم تضمین داد وقتی که تعمین داد یکی از بزرگترین مجاهدین قرار گرفت اکرامه مجاهدین بزرگ بعد گفته بود که من این همه تلاش برای اینکه اسلام را سرنگون بکنم کردم حالا دیگه باقیمانده عمرم را برای ترقی اسلام خرج میکنم رفت داخل جهاد تا این در جنگ یرموک با چهارصد نفر از صحابه اکرام بیعت علی الموت کرده بیعت علی الموت کرده یعنی یا می یا قلعه رو فتح میکنیم در اونجا چهارصد نفر از خود کل افرادی که بیعت کرده بودن همگی شهید شدن اونجا اکرمه هم زخمی بود حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی او رو آورد پیش خودش خاص در دهنش آب ریزه گفت که می شهید نشم من آب بخورم نه من آب نمی خورم تا اینکه جان داد و تمام تلاشش را به خاطر همین کرد که بتونه در خود به جهاد و برای این در الله رب العالمین شهید شود تمام تلاش خودش را اونجا کردن و به مقام بزرگ شهادت هم نایل شد چون یک جهادی کرد بسیار بزرگ و تمام اینها رو انجام دادند. این اکرامه بود الله در مورد همین همینقدر هم بدونید کافی هست